خط تابناک آلوریک همچنان سرگردان بود تنها در میان آن گروه سه نفره ناامید از اینکه راهنماییش کنند نیو و زند که در آن اواخر با امید حاصل از جستجوی رؤیاییشان راهنمایی میشدند، دیگر اشتیاقی به سرزمین پریان نداشتند و اکنون بنا به نقشهشان آلوریک را از آن دور نگاه می داشتند، آهسته تر از مردم عاقل حرکت می کردند اما هر گام را با شور و شوقی بسیار بیشتر از شور و شوق مردم عاقل باور داشتند. و زند که پیش از دیدن سرزمین پریان در پیش رویش سالهای بسیار به امید یافتن آن سرگردان شده بود اینک که آن مرز را دیده بود آن را همچون رقیبی برای ماه می پنداشت. نیف که به همان اندازه برای جستجوی آلوریک رنج کشیده بود در آن سرزمین جادویی چیزی افثانه تر از محتوای سراسر رؤیاهایش می دید و اکنون که آلوریک سعی می کرد با چاپلوسی بیهوده ای آن ذهنهای تند و وحشی را بفریبد از ذنت پاسخی جزی نمی گرفت که این خواسته ماه نیست و نیف تنها می گفت اگر من به اندازه کافی رؤیا ندارم؟ دوباره داشتند از میان که باز میگشتند که سالها پیش با آنها آشنا شده بودند با چادر خاکستری کهنه پار پاره در شفق در دشتهایی که خود و چادرشان افسانه شده بودند ظاهر میشدند و سایهی بر غروب میافزودند و آن دیوانگان هرگز چشم از آلبریک بر نمی داشتند تا مبادو از چادر بگوریزد و به سرزمین پریان و مکانی برود که در رویاها شگفتانگیز تر از رویاهای نیو بودند و با نیروی توانمندتر تر از نیروهای ماه هدایت می شدند. آلوریک اغلب سعی می کرد در سکوت و جرفای شب بگوریزد. خوستین بار در یک شب محتابی تلاش کرد تا هنگامی که به نظرش رسید تمامی جهان به خواب رفته است صبر کرد هنگامی که از چادر به درون سایه های تاریک و روشن خزید و نیو را خفته پشت سر گذاشت میدانست مرز چندان دور نیست اندکی پیش رفت و زنت در آنجا هنوز بر روی صخره ای نشسته به ماه خیره شده بود چهره زند با الهامی تازه گرفته از ماه، برگشت، فریاد زد و بر روی آلوریک پرید، شمشیرش را از او گرفته بودند و نیو بیدار شد و با خشمی شگرف به سوی آنان آمد و با گونه رشک به زنت پیبست، چون هر یک خوب میدانستند که شگفتی های سرزمین پریان از عظیمتر از هر خیالی بود که ذهنهایشان هرگز شناخته بود، و یک بار دیگر در شبی کوشید که هیچ ماهی نمی درخشید، اما نیو بیرون چادر نشسته بود و به گونه ای غریب و بیلذت هماهنگی هنگی ویژه بین دیوانگی های خیش و تاریکی بین ستاره ها را مزه مزه می کرد والبریک را دید که نهانی به سوی سرزمینی می رفت که شگفتی هایش فراتر از تمامی رؤیاهای بیمقدار نیو بود آن ناگهان تمامی خشمی که کوچکتری میتوانست نسبت به بزرگتری داشته باشد در ذهنش بیدار شد و در حالی که پشت سرش می‌خزید بدون کمکی از سوی زند، آلوریک را بیهوش بر زمین انداخت و از آن پس دیگر هرگز آلوریک نقشه‌ای برای فرار نریخت که آن اندیشه‌های گرفتار دیوانگی پیش بینی نکرده باشند و چون شد که زندانبان ها و زندانی به دشتهای انسانها باز آمدند و آلبریک از مردم کرشزارها کمک خواست، اما نیو نیو های عاقل بودن را میشناخت. بنابراین هنگامی که مردم فریادهای آلبریک را از سوی آن چادر خاکستری غریب میشنیدند، و دوبار از میان دشتهایشان به سوی آن میآمدند. نیو و زند را در وضعیت آرامی میافتند که چندین بار تمرینش کرده بودند و آلوریک از جستجوی عقیم شدهاش به دنبال سرزمین پریان میگفت. و همان گونه که مکر نیو میدانست تمامی جستجوها از دیدگاه مردم بسیاری دیوانگی شمرده میشد. آلوریک از این راه هیچ یاوری نیافت. در حالی که از راهی که سالها پیموده بودند باز میگشتند، نیو نیو آنگاروه سه نفره را رهبری میکرد. جلوی آلوریک و زنت گام بر می و در همین حال چهره باریکش را که با ریش و سبیل تاب دادهش باریکتر مینمود، بالا گرفته بود و شمشیر آلوریک را بر کمر بسته بود و تیغش از پشت سرش و دستش از جلویش بیرون زده بود، و گام بر می داشت و سرش را با حالت ویژه بالا نگاه میاشت که در نظر مسافران معدودی که او را میدیدند چون این مینه که این هیکل کوچک اندام و ژندهپوش خود را رهبر گروه بزرگتر و نامرئی می‌پندارد. البته اگر کسی او را در پایان غروب با گرگ و میش و مه زمین‌های مردابی درست در پشت سرش میدید شاید باور میکرد که در گرگ میش و می مه سپاهی به دنبال این مرد شاد و ژنده پوش و بیپروا می آید، اگر آن سپاه آنجا می بود، نیو عاقل می بود، اگر جهان می پذیرفت که سپاهی آنجا هست، اگرچه تنها آلوریک و زند گامهای غریبش را دنبال می کردند، باز هم عاقل می بود، اما آن خیال که نه بر حقیقت استوار بود و نه بر تخیل کس دیگری به خاطر تک بودنش، دیوانگی بود هنگامی که پشت سر نیو گام برمی داشتند زند تمام مدت مراقب آلوریک بود چون حسادت متقابلشان از شگفتیهای سرزمین پریان نیو و زند را به یکدیگر وابسته نگاه می داشت تا با حوثی وحشی یکسان برخورد کنند و یک روز صبح نیو با کشقوسی خود را به بالاترین حد بلندی قامت لاغرش رسانید و دست راستش را بالا گرفت و به سپاهش اشاره کرد. دوباره به نزدیکی ایر رسیده ایم و رویای جدیدی به مکانی سرشار از چیزهای فرسوده و که نمی آوریم و رسومش از این پس شیوه ماه خواهد بود. البته نیو هیچ اهمیتی به ماه نمیداد، اما مکر شگرفی داشت و می دانست که زند تنها در صورتی در نقشه جدیدش بر علیه ایر شرکت می کند که به خاطر ماه باشد و زند شاد شد و پجواک فریادهاشان از سوی تپه تک ای بازگشت و نیو همچون رهبری خوشنود از میزبانهایش به پجواکها لبخند زد فالوریک در برابر آنها برخاست و برای واپسینبار بار با نیو و زند مبارزه کرد و دریافت که پیری یا آوارگی یا نوامیدی او را از هماوردی با نیروی دیوانگی این دو نفر ناتوان کرده است و پس از آن با خونسردی بیشتری با آنها رفت. با بازنشستگی بدون اینکه دیگر اهمیتی به آنچه برسرش سرش می آید بدهد تا از آن پس تنها در خاطره ها و برای روزهای گذشته زندگی کند و در غروبهای ماه نوامبر در سرما و در اردوی تاریکشان در حالی که تنها به میان سالهای گذشته می بامدادهای بهاری را دید که دوباره بر برجهای ارل می درخشند در روشنایی این بامدادها دوباره اوریون را دید که باز با بازیچه های قدیمی بازی می که جادوگر با تلس می ساخته بود لیرازل را دید که بار دیگر در میان باغهای دلپذیر گام برمی‌دارد. اما خاطره آن اندازه توانمند نبود که بتواند در آن غروبهای تیر و تار که از زمین رطوبت و از هوا سرما میتراوید آن خیمگاه را چندان روشن کند. هنگامی که تاریکی میگ و و زنت در کنار هم مشتاقانه نقشه هایی را زمزمه می که از حوث همچون کامیابی بر گرگمیش در برهوت برمیخواست، می‌خواست. کاری از دست خاطره های گذشته بر نمی آمد. تنها وقتی که روز غمالود کامران فرو می خوفت و شب هنگام آلبریک در کنار پاره های در نوسان چادر می خوابید خاطره می توانست بدون آزردگی از دگرگونی های پرهیاهوی روز ایل را به او بازگرداند درخشان شاد و بنابر این در حالی که در دشتهای دوردست دور دست در تاریکی و زمستان جسمش بی حرکت بر زمین قرار داشت، تمامی آنچه در درونش بیشترین فعالیت و زندگی را داشت، دوباره در مراتع ایرل بود. بار دیگر از میان سالها می گذشت و با لیرازل و اوریون در بهار بود. مالوریک نمی دانست کیلومترها دور از خانهش، خانهی که از اندیشه های شادش هر شب به خاطر آن کال بد را ترک می گفت. چند اندازه جسمانی است. سالها از آن روزی گذشته بود که چادرشان در همین پهنه، همین پهنه‌ای که اینک پاره‌های چادر در آن نوسان می‌کرد، شبهی خاکستری آفریده بود. اما نیو می‌دانست به ارل نزدیک‌تر شدهاند چون پس از به خواب رفتن، رؤیاهایش از ارل زودتر به سراغش می‌آمدند و هرچه میگذشت می‌گذشت، زمانی که رؤیاها در درازای شب نزد او می‌ماندند، بیشتر میشد و اندک اندک حتی تا نزدیک بامداد هم با او بودند و از این موضوع نتیجه گرفت که هرچه جلوتر بروند رویاها بیشتر خواهند ماند و اینک تنها کمی از ارل فاصله دارند هنگامی که یک روز غروب پنهانی این موضوع را به زنت گفت زنت با جدیت گوش داد اما نظری نداد تنها گفت ماه می داند. در هر حال از نیو پیروی می کرد که کاروان غریبش را همواره به سوی هدایت می کرد که رویاهایش از دره ایرل از آن سو زودتر می آمدند. و این رهبری عجیب آنها را به ایرل نزدیک تر می کرد گونه که اغلب هنگامی که مردم از رهبرانی پیروی می کنند که دیوانه یا فریب خورده هستند چنین می شود. هرچند با دیدی ناکافی از میان سالها می گذرند سرانجام به بندری خواهند رسید یا آنچه بر سر ما می آمد غیر از این بود؟ و یک روز نوک برچهای ارل درخشان در آفتاب زود هنگام بر بالای انهنای تپه ها از دور های آبی به آنها نگریست و نیو دردم برگشت و راست به سوی آنها رفت چون مسیر آوارگیشان راست به سوی ارل نشانه نرفته بود و همچون فاتحی که دروازه‌های شهر جدیدی را می‌بیند به سوی آنها گام برداشت. آلوریک نمیدانست اش چیست اما در تفاوتیش باقی ماند و زنت نمیدانست چون نیف تنها گفته بود نقشه‌هایش باید نهفته بمانند و خودش هم نمیداند چون خیال‌هایش به درون مغزش می‌ریزند و می‌گریزند. اما چگونه میتوانست بگوید که در حال و هوای دیروز کدام تخیلات کدام نقشه ها را ساخته اند همچنان که می رفتند به شبانی رسیدند که در میان گوسفندان مشغول چرایش ایستاده به چوب دستش تکیه داده بود و تماشا میکرد و گویی هیچ چیز برایش مهم نبود جز اینکه آیندگان و روندگان را تماشا کند و هنگامی که هیچ کس نمیگذشت خیره خیره به تپه ها می تا زمانی که تمامی خاطراتش با انهناهای عظیم سبززارهای تپه ها هماهنگ شود ریش بلندی داشت ایستاده بود و بی آنکه کلامی بگوید عبور آنها را تماشا میکرد و یکی از خاطرات دیوانه نیو ناگهان او را شناخت با صدای بلند نامش را صدا زد و شبان پاسخ داد و چه کسی می توانست باشد جز واند سپس به صحبت پرداختند و نیف فهمیده سخن میگفت همانگونه که اغلب با مردم عاقل سخن میگفت و با تقلیدی زیرکانه شیوه ها و نیرنگهای های بودن را با بازسازی میکرد تا مباد آلوریک تقاضای یاری در برابر او بکند. اما آلوریک هیچ کمکی نخواست. خاموش ایستاده بود و به صحبت کردن دیگران گوش میداد. اما اندیشه هایش در دور دست گذشته بود. و آنها برای او تنها اصباتی بودند واند از آنها پرسید که آیا سرزمین پریان را یافتند اما آنگونه پرسید که کسی از کودکان می‌پرسد که آیا قایق کوچک اسباب بازیشان را در جزیرهای زیبا یافتند سالها به گوسفندان پرداخته بود و اینک اشیای مرد نیاز انسانها و باهایشان را میدانست و این چیزها به گونه نفوز نپذیری تخیلش را فرا گرفته بودند و سرانجام دیواری ساخته بودند که از ورای آن دورتر را نمیدید. هنگامی که جوان بود، بله زمانی سرزمین پریان را جستجو کرده بود اما اکنون، اکنون که پیرتر شده بود دیگر نه، این چیزها از آن جوانان بود. زنت گفت، ما مرزش را دیدیم، مرز شفق. واند گفت، مه غروب بوده است. زنت گفت، من بر سرزمین پریان ایستاده هم. اما واند لبخند زد و تکیه بر چوب دست بلندش سر و ریشش را تکان داد و هر موج ریشش قصه های زنت را درباره آن مرز انکار می کرد و لبهایش با لبخندی آنها را دور می ساخت و چشم های مقاومش در جدیت فرهنگ دشت هایی که میشناسیم غرق بودند گفت: « نه، سرزمین پریان نبوده است. و نیو با واند موافقت کرد چون خلقه او و شیوه های عاقلانه را مطالعه می کرد و از سرزمین پریان همان گونه سخن گفتند که آدم از رویایی میگوید که سپیددم میآید و پیش از بیدار شدن می رود. و آلوریک با ناامیدی میشنید. چون اکنون میدید لیرازل که در آن سوی مرز میزیست، ماورای باور انسان نیز قرار داشت. بنابراین ناگهان احساس کرد فاصلهشان از گذشته بیشتر شده. و احساس کرد کاملا تنها مانده است. واند گفت: «زمانی آن را جستجو کردم. اما نه هیچ سرزمین پریانی وجود ندارد. نیو گفت: «نه. و تنها زنت شگفت زده شد واند پاسخ داد نه و سرش را تکان داد و چشمهایش را به سوی گوسفندانش گرداند و درست ماورای گوسفندانش خط تابناکی را دید که به سوی آنها میآمد چندان چشمهایش بر آن خط تابناک که از فراز تپه ها و از سوی شرق به سوی آنها میآمد دوخته ماند که دیگران سرگرداندند و نگریستند آنها هم آن را دیدند خط درخشانی از نقره یا فلزی آبیگون درخشان و دگرگون شونده با رنگهای گذرای شگفت و پیشا آن صدای ضعیف و نرم ترانه های بسیار که هم می آمد درست همچون نسیمی پیش در آمد توفن صدای نرم ترانه های بسیار که میآمد. می آمد. همچنان که خیره ایستاده بودند خط تابناک به یکی از دورترین گوسفندان واند رسید و او را دربر گرفت و بلا فاصل پشم های گوسفند به ذر نابی تبدیل شد که تنها در ترانه های آشغانی کوهن از آن گفتهاند و خط تابناک پیش آمد و تمامی گوسفندان با هم ناپدید شدند اکنون می دیدند که بلندای آن به بلندای مهی برخواسته از جوی باری کوچک است و واند همچنان خیره به آن ایستاده بود نه تکان می‌خورد و نه می اما نیف زود برگشت و به اختصار به زند اشاره کرد و بازوی آلوریک را گرفتند و به سوی ارل شتافتند خط درخشان که گویی بر هر ناهمواری دشت ها سکندری می‌خورد، به تندی آنها پیش نمی آمد. اما هرگز هنگام استراحت آنها باز نمی ایستاد. هرگز هنگام خستگی آنها خسته نمیشد. پیوسته بر فراز تمامی تپه ها و حسارهای زمین پیش میآمد. آمد، غروب نه سیمای آن را دگرگون میکرد و نه از سرعتش میکاست. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها